سلام علیکم. اونجوری که کارشناسان با اونایی که در واقع تو کار ساخت و ساز و ساختمان و اینها هستن تمام اینها رو ارزیابی کردن، محاسبه کردن و ارائه کردن که طبق های فنی که ویلا سازی داره با و هزینه آپارتمان میشه در واقع ویلایی رو ساخت. بله از بود زمین خزینش دوباره تونه مچعف بشه. اما اگر زمین رایگان باشه از این همه زمین خدا دادی که ما داریم و حق مردمه و طبق اوکم شهری من احیا ارز میتتن فهی له باید ارازی مواد و احیا مواد در واقع در اختیار مردم گذاشته بشه نه اینکه طبقه طبق پرتوکل سازمان ملل خلاف اصل اسلامی ما بیاییم طبق اون و اصول اقتصادی که سازمان صندوق بلونالی پول و با اینکه جهانی ارائه میکنن و اونها میگن این الگو رو میدن بناید که بتونن اقتصال لیبرالی و غربی رو پیاده بکنن و نقشه جهانی بیستی رو پیاده بکنن میگن باید زمین رو در واقع احتکار کرد و قطرش کانی مردم داد و این از ارکان اقتصادیه که کاملا باطله یعنی ارکان اقتصادی لیبرال هست و به طور کشیدن مردم خب ما چرا پیرو اون دستور و عملهای غربی باشیم؟ مشکل امیر آدیوز اینه که میگن WB بانک جهانی مثلا امسال گفت رشد اقتصادی ما خوب بوده نمیدونم IMF صندوق بنونالی پول گفتش که ایران اگه ارزا هز کنه اقتصادش خوب میشه مشکل اینا اینه که قرب زده در عملن ما فقط با یک مسئله ویلایی کار نداریم مشکل ما قرب زدگی در نظریه و عمل هست در واقع اصلاح طلب ها زده در نظر و اصول گراه هایی که در واقع صاحب فکر نیستند، فکر تمدنی نیستند، قزو زده در نظر عمل هستند. خب ما از شر هر دو اینها باید بریم به سمت تمدن اسلامی که از دوا فرمودن گام دوم انقلاب در پرتو این هست که در واقع کارشناسان اسلامی دولت جهان هزباللهی مبتنی بر کسانی که معتقده به جامعه اسلام و تمدن اسلامی هستند روی کار بیان دولت اسلامی رو تشکیل بدن جامعه اسلامی رو تشکیل بدن تمدن سازی اسلامی بکنن تا برسیم به حکومت جهانی اسلام ظهور از مهدی یعنی کسی که مخل ظهور در واقع تو در سر کنار میگذاری و اون کسی که مقربتر است در نزد اون اون که هزد ولی اصل میخواد او رو داره پیش میندزی. حرف اینه. ولذا حرف این نیستی که صرفا یکی ویلایی، چون طرفدار ویلایی هست دیگری طرفدار آپارتمانسازی با همین معیار این رو چون بیشتر خوشمون میاد بزنیم کنار او رو و این رو جایگزین کنیم نه بس بیش از اینه یک شاخص اتمدنیست بس در اینه که شما به خطا تصور میکنید دولت آپارتمانی رو راسونتر میتونه دست مردم بده و ویلایی رو سختتر در دقیقا برعکس راه آسانتر خانه دارشندان مردم اینه که به سمت ویلایی سازی دولت بره چرا؟ چون اگر با روش آپارتمانی بخوایم بریم با همین مسکن ملی و وام های هر س... در واقع اقصاد هر سه ماه چل میلیون توانی که باید به پرد و مردم از عهده بر نمیان به خاطر حزینه های که آپارتمان داره مثلا بعد از تیراهن و بتون آرمق و اون زیربنهایی که ساخته میشه خیلی عمیقتر و سنگینتر و سخت تر بسیار مقاومتری رو به کار برد تا بتونه در واقع چهار پنگ در رو تحمل بکنه و هم از وجهات جهت از مضافه از آسانسورش، نگهداریش، اون دوله کشیش، اون آبی که باید کشیده بشه آب و گازی که تا بالا بره بیاد پایین و امثال این اینا هزینه های خیلی مضاعفی درست میکنه و جهات مختلفی که در واقع به جهت سلامتی به جهت اخلاقی روانی به جهت آرامش روانی خانواده به جهت افزایش جمعیت هزینه هاش بسیار مضاعفه همچنین به خاطر عباد امنیتی که دشمن میتونه ضربات مخلکتری به او وارد کنه در حالی که ویدائی سازی اینجوری نیست خب تو جهات مختلف وقتی نگاه میکنی در مجموع علاوه بر اینکه حزینه مادی ویلایی سازی بسیار کمتر هست و حزینه های مادی آپارتمان سازی بیشتر هست حزینه های معنوی بسیار مضاعفی بر دوش جامعه اسلام میفته به آپارتمان سازی و از همه اینا گذشته در ویلایی سازی هرچند نهایتا بگید که 20 متر ویلایی با احتساب و حالا اون هزینه هایی که برای زمین و هذنه امکانات بخواد بشه با هزینه ویلایی مثلا نزدیک بشه یا برابر بشه خوب بازی این اشکال پاسخ داره و اون اینکه اگر آپارتمانسازی رو شما نتونید اون پروژه رو اونطور که میگن تل زمان بندی همراهی بکنی مجبور میشی که او رو باگذار بکنیم و محروم میشی از منزل و همیشه تو این در واقع بیچارگی و آوارگی اجاره نشینی باقی میمونی اما در مدل طرح زمین رایگان که خود شخص سازنده خواهد شد به این صورت هستش که شما زمین رو میگیرید ولو که الان نتونید در واقع 200 متر ساختمان کاملی که میخواید بسازید در حد سی 40 متری هم یه اتاق آشپزخونه که در در دسترس یک همکف بتونه رو کار شما را بیندازه وارد منزل خودتون بشید اینو خیلی این کاری کردن در از اجار نشین میاد بیرون تو منزل خودش ساکن میشه بعد در واقع بهش اتاق خواب و پذیرایی و نشیمن و غیره و غیره و های دیگر رو کم کم به زمان اضافه میکنه و اون رو و تکمیل میکنه و این رو میتونه در واقع با اندقته در واقع سرمایه های خودش این کار به راحتی به زمان انجام بده اما تو این مدل هرگز این اقشار خوندار نمیشن مجبورن اگه تو این پروژه هم تو براشون قرار میدی واقع رو رها کنند بدن دست سرمایه دار این اصلی اصلیست پس مسئله را یک مسئله تمدنی و عمیق ببینید نه سطحی و گذرا.